في هذه الساعات وفي كل ساعه وليا وخافا و وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طویلا السلام عليك يا مولانا يا فاطمة الزهراء السلام عليكم يا اهل بيت النبوه بحث در نگاهی اجمالی به تاریخچه بحث وحدت شخصی وجود بود که به تاریخچه اجمالی آن در میان مسلمانان و متقدمین بر ابن عربی رسیدیم از جمله کسانی که ایشان را میتوان جزء متقدمین از قائلین به وحدت شخصی وجود از ابن عربی دانست ابو طالب مکیس که متوفی 389 هجریه که صاحب کتاب قوت القلوب فی معاملات المحبوب هست که ابن عربی در چندین جا از کتاب اون نقل میکنه و تعابیر عجیبی رو در مورد اون داره از جمله این که او را از رجال الله میداند او را از بزرگان اهل ذوق میداند او را از اصحاب و شیوخ صوفیه به حساب میاره و تعبیر این چنینی در مورد اون داره که جماعتن من اصحابنا و شیوخنا کبریتال مکی این فرد حتی را جزو شیوخ و اساتید خودش حساب میکنه که نظریه لا تکرار فتجلی هم از اون ذکر شده که ابن عربی در چندین جا این نظریه رو طرح میکنه و نسبت میده به ابو طالب مکی شخص بعدی عبدالرحمن سلمی است که متوفی 412 هجریه که صاحب کتاب طبقات و هست که شاید همون کتاب مقامات الاولیاء باشه که ابن عربی این کتاب رو به سلمی نسبت داده و از اون هم نقل میکنه کتاب دیگری داره غلطات و که خود ابن عربی تعبیر کرده که غلطهای صوفیه رو در این کتاب بیان کرده و در جایی مکاشفه ای رو خود ابن عربی ذکر میکنه که در اون مکاشفه با سلمی به مناظره پرداخته. این رو هم میتوانیم جزف سابقین بر ابن عربی در نظریه وحدت شخصی وجود دانست. شخص بعدی حافظ ابو نعیم است که متوفی 429 هجریه که صاحب کتاب حلیت الاولیاء است در تاریخ و معارف صوفیه که ابن عربی در چندین جا از این کتاب نقل میکنه شخص بعدی ابوالقاسم قشیدی متوفی 467 هجری که کتاب معروفی داره به نام رساله قشیریه که از مهمترین کتب صوفیه این کتاب به شمار میاد و مسائلی رو در رابطه با عرفان نظری و عرفان عملی ابن عربی در چندین جا از این کتاب نقل میکنه افراد دیگری هم هستند که شاید ابن عربی اون افراد رو نام نبرده یا کمتر نام برده که اینها هم جزو سابقین بر ابن عربی حساب میشن مثل ابونس عبدالله ابن علی صرار متوفی 300 هفتاد و هجری که کتابی داره به نام که جزوه یکی از کتابی که در تدوین عرفان صوفیه اون کتاب رو میتوان جزوه کتاب سابق دانست شخص بعدی ابوالحسن علی ابن جعفر خرقانی که متوفیه 425 و بیست و هجری است که توابیر زیادی و توابیر عجیبی رو در مورد این فرد بعضی از قائلین به عرفان نظری ذکر کردهاند و در فنا سخن بسیار گفته عبالعباس قصاب هست که اواخر قرن چهار و اوایل قرن پنجم هجری است که لیس فدارین الا ربی و ان الموجودات کلها معدومتون الا وجوده رو از این فرد نقل میکنند ابو سعید فضل الله ابن محمد خیر هست که این هم سخنان منظوم و منصور فراوانی رو در عشق عرفانی داره حاجی عبدالله انصاری است که کتاب منازل صائرین رو داره که البته خب ابن عربی این کتاب رو بسیار میشناسد و در موارد متعددی به عنوان هروی از خاجه یاد میکنه که عباراتی رو در وحدت وجود داره در توحید سخن بسیار داره و بعضی از اشعار توحیدی اون رو اشعاری که داله بر وحدت وجود هست رو ابن عربی پسندیده از جمله افراد دیگر که اینها دیگه تقریبا جزء شاید هم اصرهای ابن عربی و نزدیک به اصر ابن عربی محسوب میشند مثل خود عطار نیشابوری هست که متوفی 626 هجری هست ولی قبل از ایشون اینال القضاعت همدانی هست که متوفی 525 و کسان دیگری هستند که اونها رو هم میتوانیم جزو قائلین به وحده شخصی وجود و جزو مشایخ بزرگ صوفیه در همعصر ابن عربی و قبل از ابن عربی به حساب بیاریم که حالا از ذکر اونها خودداری میکنیم اما خب اون چیزی که به طور کلی در مشایخ عرفانی صوفیه در قبل از ابن عربی و معاصر ابن عربی میتوانیم بگوییم اینه که اینها همشون از عامه بودند و حتی در بعضی از موارد، بعضی از این افراد مورد ترد و لعن حضرات معصومین علیهم السلام قرار گرفتند و حتی در بین شاگردان عیمیت هار سلام الله علیهم مجمعین و علمای عصر غیبت که بعضی مورد انایات خاصی وجود نازنین آقا امام زمان علیه السلام قرار گرفتند اینها جایگاهی نداشتند و از اون فضای عالی علمی تعالیم اهل بیت اسمت و تهارت اینها به کنار بودند. می این مطلب رو به طور کلی به همه اینها نسبت بدیم که البته تفصیل این مسئله نیاز به مجال دیگری داره که از حوصله بحث ما خارجه. نتیجه این بررسی اجمالی تاریخچه وحدت شخصی وجود رو اینطور می توانیم بگوییم که با بررسی تاریخچه وحدت شخصی وجود این مطلب روشد میشه که این فکر و سایر تقاریر وحدت وجود جزو نازل ترین و ابتدائی ترین افکار بشری بودند از قعر جنگل در هند باستان در حدود هزار و چندی سال قبل از میلاد گرفته و فیلسوفان ابتدایی و مادیگرای یونان باستان گرفته و انسان که عرض شد که خیلی‌هاشون دور از تعقل و دور از اون تعالیم وجودات نازنین اهل بیت اسمت و طهارت در اسلام بودند این افکار رو طرح کردند و اونها نتونستند اون فکر عالی که ادیان الهی و کتب آسمانی از جمله قرآن کریم اون فکر رو طرح کردند و اون بحث ابداع، بحث ایجاد لامن شیعه بحث خلق که این فکر بسیار فکر عالی است و درک این خودش ذهن عالی میطلبه وجود عالی رو میتربه یک انسان پیشرفته در تفکرات رو می طلبه این رو نتونستند درک بکنند و این اشکال برای اونها ایجاد شده که چطور می شود که خداوند متعال از چیزی که نبوده از چیز دیگری رو بیافریند لذا حتما باید چیزی باشد که از اون چیز عالم پدید آمده باشد، از اون چیز مخلوقات پدید آمده باشد، لذا خب این چیز رو هم که چیز واحدی معمولا اینها ذکر کرده بودند رو خیلیها نسبت داده بودند به خداوند متعال، بعضی هم این فکر رو دقیقا تر کرده بودند، اما در تطبیق اون به مسائل مادی روی آورده بودند، ازا اینها نتونسته بودن اون بحث عمیق و اون معنای عمیق توحید و خلقت عالم که همون بحث خلق باشد که در قرآن کرارن بحث خلق آمده و بحث ایجاد لامنشی آمده این رو درک بکنند. بعد از بحث تاریخچه وحدت شخصی وجود و نگاه اجمالی که ما به این بحث داشتیم، وارد عدله عقلیهی که برای بحث وحدت شخصی وجود شده انشاءالله الله می شویم بسیاری از قائلین به بحث وحدت شخصی وجود مخصوصا از متأخرین و اونهایی که لسان فلسفین رو آگاه هستن و در مباحث فلسفی کار کرده بسیاری از اینها قائل هستند که ادله عقلی وحدت شخصی وجود متفرع بر قبول اصالت الوجوده به همین معنایی که رایج هست که آنچه که تحقق دارد آنچه که خارج را پر کرده از وجود است لذا خب لازم است قبل از اینکه خود عدله عقلی وحدت شخصی وجود رو طرح بکنیم دلیل بر اصالت الوجود طرح بشه و نقد اون هم روشن بشه که در ضمن نقد وحدت تشکیکی وجود هم که جزء یکی از تقاریر وحدت وجود بود در ضمن نقد بحث اصالت الوجود روشن خواهد شد چون بحث وحدت تشکیکی وجود متفرع بر قبول اصالت الوجود هست مدعای اصالت الوجود اینه که آنچه که تحقق دارد اون وجود و است. به عبارت دیگر چیزی به نام وجود خارج رو پر کرده عالم از جنس وجوده وجود مثل یک است که در خارج هست و عالم از اون پدید آمده که بنابر بحث وحدت تشکیکیه وجود خب یک قسمت اون چیز خارجی، اون جنسیت خارجی که وجود هست، یک قسمتش که قسمت شدیدتر اون باشه خداوند متعاله و قسمتهای ضعیفتر اون بقیه عالم هست که البته این قسمتها کاملا میتوانند از همدیگه جدا باشند و در حقیقت اصلا قسمت یک چیز واحد نباشند و اینی که ما سخن از اتحاد میکنیم فقط به لحاظ سنقه که این حقائق متباینه این حقایق متکسره اون وجود شدید که وجود خداوند متعال است و وجود عالم و بقیه متکسرات و بقیه مخلوقات اینها چون همشون جنس همشون از وجوده حقیقتشون از وجوده از چیزی به نام وجود اینها تحقق دارند از این تعبیر میکنیم به اتحاد به و الله ممکن است که در اینجا اصلا حقیقتا اتحادی وجود نداشته باشد چیز واحدی نباشد که اینها از اون چیز واحد پدید آمده باشند و قسمت اون چیز باشد نه در حقیقت چیزهای متکسر است اما جنس همه اینها اون وجوده که بنابر بحث تشکیکی وجود این می‌شود که اون قسمت شدیدتر که قسمت عالی تر این وجود هست اون وجود حق تحالاست و بقیه قسمت ها و قسمت های سوای حق تعالی است که در این صورت هم طرح می کنند که کما اینکه قبلا هم اشاره شد که البته ما به الامتیازی سوای وجود هم ندارند تفاوت این وجود ها در خود وجود از جمله شدت و ضعف وجود هست و بنابرا بحث وحدت شخصی وجود وقتی که اصالت الوجود ثابت شد و ثابت شد که اون هویت عینی و اون حقیقت خارجی اون وجود است و خارج و عالم از جنس وجود هست خب تعبیر میکنن که یک وجود فقط هست و اون وجود خداوند متعال هست و بقیه عالم هم از این وجود میباشند به توضیحاتی که قبلا اشاره شد و بیان میکنن در مدعای حالات الوجود که وجود اعتباری نیست یعنی اینطور نیست که وجود انتزاع ذهن باشد و اعتبار زن از خارج باشد اینطور نیست که یک منشأ انتظاء حقیقی در خارج وجود داشته باشد و وجود از اون منشأ انتظاء حقیقی پدید آمده باشد اینطور نیست که یک منشأ انتزاع حقیقی وجود داشته باشد و ما مفهوم وجود رو از اون منش از اون منشأ انتزاع انتزاع کرده باشیم اما وقتی که میگویند ماهیت اعتباری یعنی ولو اینکه برای ماهیت منشأ انتزاع حقیقی در خارج از ذهن وجود دارد اما اون هویت خارجی اون هویت عینی ماهیت نیست عالم از جنس ماهیت نیست لذا تعبیر میکنن که ماهیت اعتباری است و ماهیت اصیل نیست اما وقتی میگویند که وجود اصیل است و اعتباری نیست یعنی وجود عین خارج است و خارج, و خارج و عالم خود وجود هست و اینطور نیست که ما یک معنایی رو از خارج در مفهوم وجود انتزاع کرده باشیم دلیلی رو که اینها برای این مدعا میارن اینه که مفهوم وجود بر همه عالم صدق میکنه و همه عالم مستاق مفهوم وجود هست و غیر از وجود عدم و عدم یعنی نیستی و نیستی که تحققی ندارد و هرچه چه تحقق دارد هستی و وجود است و هرچه غیر از وجود هست اون عدم و نیستی است پس عالم و آنچه که هست همه وجود است که به طور خلاصه می توانیم اینطور بیان بکنیم که همون عدم نقیز وجود که لا وجود هست همون عدم است ارتفاع نقیزین محال پس هر چیزی یا مستاق مفهوم وجود یا مستاق مفهوم عدم از این دوتا خارج نیست خود عدم یعنی نیستی و عدم تحقق چیزی که تحقق ندارد چیزی که نیست هست نیستی یعنی عدم عدم یعنی نیستی لذا هر چیزی که تحقق دارد نمیتواند مسداق مفهوم عدم باشد نمیتواند عدم باشد پس مسداق مفهوم وجوده چرا چون از بین این دو تا مفهوم خارج نیستی هر چیزی یا باید مسداق مفهوم وجود باشد یا باید مسداق مفهوم عدم باشد، پس هر چیزی که تحقق دارد خب اون مستاق مفهوم وجود است چون نمیتواند مستاق مفهوم نیستی و عدم باشه. خب عالم هم تحقق دارد، پس عالم مستاق مفهوم وجود است پس عالم وجود است. و این یعنی وجود اسیل است و هویت عینی خود وجود است و غیر از وجود، ذهنی و اعتباری است در نقد این مدعا بیان می‌کنیم که خود صدق مفهوم وجود بر عالم دلیل بر این نیست که عالم خودش وجود باشد یک مفهوم وجود داریم که بر عالم صدق می‌کند اما این صدق دلیل بر این نیست که اویت خارجی خودش وجود باشد و عالم خودش وجود باشه در توضیح این مسئله بیان می‌کنیم که ما یک اثر و یک صفتی رو از تمام حقائق عینی و حقائق خارج از ذهن ما اون صفت رو نظاره می‌کنیم و اون صفت رو می‌بینیم و اون اینی که همه حقایق عینی اونها ترده عدم میکنند این اثر رو همه اونها دارند همه اونها تارده عدم هستند و همه حقائق خارجی اون نیستی رو نفی میکنند خب ما از این اثر از اینکه همه اونها به حقیقت خودشون به هویت خودشون دارن عدم رو نفی میکنن میگن که ما عدم نیستیم از این انتظا مفهوم وجود رو میکنیم انتظا مفهوم هستی رو میکنیم و میگیم اونها هستند یعنی اونها وجود دارن اما خب این به این معنی نیست که یک جنسیتی در خارج هست به نام وجود اینطور نیست که چیزی در خارج باشد به نام وجود اینطور نیست که حقیقتی هویتی کولمبیا در خارج باشد به معنای وجود اینی که تعبیر میکنیم کولمبیا یعنی یک چیز ملموسی اینطور تعبیر میکنیم که در ذهن خوب جای بگیره که چیزی یعنی در خارج باشه حقیقتی هویتی در خارج باشد که اون خودش وجود باشد و اون خارج را پر کرده باشد بلکه نه ما به همه حقایق متباینه و متکسره و چیزهایی که به تمام ذات میتوانند از همدیگر جدا باشند و از فرض جدایی اونها ای لازم نمیآید میتوانیم به همه اونها از این جهت که اونها نیستی نیستند اونها عدم نیستند میتوانیم به همه اونها نسبت وجود رو بدهیم و این فی یک انتظا ذهن از این اثر مشترک حقایق عینی کما اینکه از لفظ هستی که همون به معنای ورود هست این به ذهن انسان تبادر میکنه که یعنی اشیاعی که هستند وقتی ما میگیم هستی اطلاق لفظ هستی رو میکنیم به ذهن این خطور میکنه یعنی اشیاءی که هستند خب نه اینکه خود هستی یک چیز مستقلی در خارج باشد یک هویت حقیقی در خارج باشد نه به این نه نیست و انتظار مفهوم واحد از امور مختلفه دال بروجود حقیقت مشترکی در بین اونها نیست بلکه میشود از امور مختلفه به تمام ذات از این جهت که آثار مشترکی داشته باشند از این جهت که صفت مشترکی داشته باشند ما میتوانیم انتزاع مفهوم واحدی رو بکنیم و اینی که امور متعدده همشون یک اثر مشترکی داشته باشند در یک اثر اشتراک داشته باشند از این نمیتوانیم بفهمیم که حتما یک حقیقت واحدی هم در بین اینها وجود دارد به عنوان مثال حالا برای تقریبه به ذهن ما میبینیم که مثلا لامپ این سبب روشنایی میشود اثر لامپ روشنایی است از اون طرف مثلا میبینیم که خود خورشید هم اثرش مثلا روشنایی است و امور مختلف دیگری که میبینیم اثر اینها مثلا روشنایی است آیا چیز مشترکی مثلا در بین لامپ و بین خرشید وجود دارد این رو حالا برای تقریبه به ذهن بیان کردیم و خیلی نمیخواهیم که مثال دقیقی در این زمینه بیان کرده باشیم و امور متعدد دیگری رو که ما میتوانیم اونها رو ببینیم که میتوانند بله اثر مشترکی داشته باشند اما دال بر وجود حقیقت مشترکی در بین اینها این, این اثرات مشترک نمیتواند باشد و اصلا همینطور که قبلا هم اشاره کردیم جدایی از بحث اثر مشترک از تمام حقایق متکسره و حقایق متباینه به تمام ذات ولو اینکه حتی اثر مشترک هم نداشته باشند ما میتوانیم انتظاء مفهوم واحد بکنیم مثلا صدق شی به اونها بکنیم و صدق چیزهای دیگری که ممکن است که خارجا حتی مثلا اثر ملموسی از اونها پیدا نکنیم اما به سبب یک انتظا واحدی رو که ما اونها داشتیم حالا یا این انتظا به سبب اثر هست یا به سبب صفت هست یا به سبب مرازمات هست یا به سبب چیزهای دیگر ما میتوانیم مفهوم واحدی رو از اون انتظا بکنیم کما اینکه خود فلاسفه هم در موارد متعددی این کار رو کردن مثلا به همه اجناس عالیه که تعبیر میکنن که دیگه جنسیت جنسی فوق اینها نیست اینها جنس الاجناس هستند اجناس عالی هستند هیچ جنسی دیگه بالاتر از اینها نیست در جنس با هیچ چیز دیگر اینها اشتراک ندارند باز به همه این اجناس عالیه اطلاق جنس می و مفهوم واحد جنس رو بر همه اونها صادق می در حالی که خارجا جنسی که مشترک باشد بین اینها وجود نداره. پس نتیجه بحث این شد که مفهوم وجود مثل سایر معقولات ثانیه فلسفی منشه انتظار حقیقی دارد بله ما یک اثر ترد عدمی رو از اینها میبینیم میفهمیم که اینها نیستی نیستند عدم نیستند به حقیقتشون ترد عدم میکنند خب منشه انتظاء حقیقی دارند اما خودش خود مفهوم وجود یک هویت عینی خاص و مستقلی ندارد لذا هیچ مانعی ندارد که ما از حقائق متكسره حقیقیه و متباینه به تمام ذات که هیچ وجه اشتراکی با همدیگر ندارند متباینه به تمام ذات هستند ما مفهوم وجود رو انتضاع بکنیم و قائل بشویم که همه موجودات اینها متباين به تمام ذات هستند خداوند متعال تباین به تمام ذات با مخلوقات دارد خود مخلوقات با همدیگر کاملا جدا هستند و تباین به تمام ذات دارند لذا این انتظاع مفهوم واحد مانع بر قول به تکسر حقیقی و مانع به قول تباین به زات موجودات با یکدیگر شود فقط ممکنه که در ذهن بعضی این اشکال ایجاد بشود که اگر مفاهیمی در ذهن ما وجود دارند که هیچ ما به ازای حقیقی و خارجی ندارند اگر یک همچین چیزی در ذهن ما امکان داشته باشه آیا این مستلزم سفسته نیست مستلزم تعطیل علم نیست آیا این سبب نمی شود که ذهن انسان در هر مفهومی که درک می کند تشکیل کنه که چه بسا این مفهوم هم حقیقت خارجی نداشته باشد هویت خارجی نداشته باشد مابعضای خارجی مستقلی نداشته باشد و اگر در هر مفهومی انسان این تشکیک رو بکنه لازمش این می میاد که دیگر راه علم به خارج از ذهن بسته باشد و انسان نتواند به هیچ حقیقت خارجی علم پیدا بکند آیا این حرف سبب این اشکال و سبب سفسته نمیشود سبب تعطیل علم نمیشود که در جواب ما میگوییم که خود ذهن میفهمد که اون مفهومی رو که از خارج گرفته از چه گرفته یک وقت مفهوم رو از هویت خارجی گرفته خب میگوید هویت خارجی این است اما یک وقت مفهوم رو از اثر گرفته یک وقت مفهوم رو از صفت گرفته در مفهوم وجود خود ذهن انسان میفهمد که نه از این جهت که اینها هستند لذا تعبیر هستی میکند اینها هستند اینها حقیقت دارند تحقق دارند از این اثر از اینکه اینها ترد عدم میکنند انتظار مفهوم وجود رو کرده و این مفهوم وجود خود ذهن درک کند که این ناظر به اون هویت عینی به اون حقیقت خارجی نیست نمیخواد بگوید خارج از جنس وجود است وجود چیزی است که جنسیت خارج رو تشکیل داده نه خود زن در هر مفهومی اگر دقت بکند میفهمد که این مفهوم رو از چه گرفته لذا معلوم شد که ادعای اسالهت الوجود یک ادعایی است که دلیل درستی در این مسئله و برای مدعای خودش ندارد و به سبب خلط انتظاع مفهوم از خارج این ادعا درست شده و لذا با نقد اصالت الوجود و عدم پذیرش اصالت الوجود اولا وحدت تشکیکی وجود هم خود به خود منتفی می شود چون متفرع بر پذیرش اصالت الوجود هست و همینطور آنهایی که قائلن که عدلده وحدت شخصی وجود متفرجه بر پذیرش اصالت الوجود هست خود به خود با نقد این دلیل تمام ادله عقلیه وحدت شخصی وجود هم منتفی خواهد شد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته